حکایت ابو هریره رضی الله عنه هر روز صبح به خدمت مصطفی صلی الله علیه آمدی گفت یا ابا هریره زرنی قبا تزدت حبا هر روز ما تا محبت زیاد شود صاحب را گفتند بدین خوبی که آفتاب است نشانی دین که کس او را دوست گرفته است و عشق آورده گفت برای آنکه هر روز می تواندید مگر در زمستان که محجوب است و محبوب به دیدار مردم شدن عیب نیست ولی که نه چندان که گویند بس اگر فیشتن را ملامت کنی ملامت نباید شنید زکاس